قصه های هزار یک شب شب ده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 آسان تر است که خود را از اینجا بدر شوم. یک امشب نیز بگذارید در اینجا بمانم چون بامداد شود از پی کار خیش خواهم رفت دلاله گفت سهل باشد که یک امشب این را نگاه داریم دو دختر دیگر گفتند به شرط آنکه که هرچه بیند از سبب آن باز نپرسد و نپرسیده سخن نگوید حمال شرط پذیرفت پس گفتند که برخیز و آنچه بر تاق در نوشتهاند برخان حمال برخاسته دید که نوشتند از هرچه بینی سؤال مکن و تا نپرسند پاسخ مگو حمال با ایشان پیمان بسته بنشستند آنگاه دلاله برخاسته شام بر فروخت و عود بسوخت و خان گسترده خوردنی بیاورد آنگاه در قصر کوفته شد لالل برخواسته به در آمد. ستان گدای یک چشم زنخ تراشیده بر در یافت بازگشته با خواهران گفت که کوبندگان دو تنند که چشم چپ هر کدام نابینا و زنخشان تراشیده و هر یکی به صورتی هستند اگر به خانه اندر آیند حالتی دارند که مزهک توانند بود. پس آن دو دختر جواز دادند به شرط آنکه از هرچه بینند سوال نکنند و ناپرسیده سخن نگویند دلاله بیرون آمده با ایشان پیمان بست و ایشان را به خانه آورد ایشان سلام کردند و به اجازت دختران بنشستند چون حمال را دیدند با هم گفتند که این هم به صورت ماست حمال این بشنید برا شفت و به تندی گفت لب از یاوه بر و هیچ مگویید مگر آنچه بر طاق در نوشته بودند نخاندید. دختران از این سخن بخندیدند و گفتند که حمال با این ستنگدا اسباب خنده و طرب امشب خواهند بود. پس خوردنی بخوردند و به صحبت بنشستند و بعد از زمانی شراب حاضر آورده همی خوردند تا مست شدند. هممال به گدایان گفت ما را دمی مشغول کنید گدایان را شور در گرفت و آلت طرب به طلبیدند دلاله دفع موصلی و اود عراقی و چنگ عجمی پیش آورد. هر سه گدا بر پا خواستند هر یکی یک گونه آلت تراب به کف گرفته بنواختند و دختران نقمه همی پرداختند و آوازهای مستانه و آواز چنگ و چقانه از خانه بلند میشد که ناگه دگربار در را کوفتند. دلاله پشت در آمده و بگشود دید که ستن بازرگانند و ایشان خلیفه هارون الرشید و جعفر برمکی و مسرور خادم بودند که به صورت بازرگانان همی گذشتند چون به در خانه رسیدند و آواز چنگ و چغانه بشنیدند خلیفه گفت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 چون دلاله ایشان را به صورت بازرگانان دید بازگشته خواهران را از ماجرا آگاه کرد و اجازت گرفته بازرگانان را به خانه اندر آورد. چون بیامدند دختران برخاسته ایشان را در جایی نکو بنشندند و گفتند به شرط اینکه که از هرچه بینید سوال مکنید و نپرسیده سخن نگویید. چون ایشان بنشستند دلاله برخواسته دور شراب از سر گرفت. پیمانه پیش خلیفه آورد. خلیفه گفت ما حاجی هستیم. آنگاه درمان ظرفی از لیمو به شکر گداخته آمیخته پاره یخ بران ریخته پیش خلیفه آورد. خلیفه با خود گفت فردا پاداش نیکو به این دختر خواهم داد. چون یاران به باد بنشستند و دور از هفت بگذشت باد گساران از شراب ناب مست شدند دخترکان از خانه به در آمده در کنار حوض بی‌ایستادند و حمال را پیش خود بخاندند حمال به نزد ایشان رفت دید که دو سگ سیاه در زنجیرند پس خداوند خانه برخاست تازیانه بگرفت و به حمال گفت که یکی از این دو سگ را پیش من آور حمال زنجیر یکی از آن دو برگرفته پیش برد و دختر تازیانه بر آن سگ میزد و سگ همی خروشید و همی گریست تا آنکه بازوان دختر برنجید و تازیانه بینداخت آنگاه سگ را در آغوش کشیده اشک از چشمانش پاک کرد و به رخسار و جبینش بوسه داد پس از آن به حمال گفت این را به جای خود بازگردان و سگ دیگر را بیاور هممال چنان کرد دختر بار دیگر تازیانه بگرفت و با این سگ نیز چنان کرد که با آن یکی کرده بود خلیفه از دیدن اینها در عجب شد و به جعفر اشارت کرد که چگونگی باز پرس جعفر به اشاره گفت سخن مگو پس از آن خداوند خانه بیامد به فراز تختی بنشست و دربان بر تخت جداگانه نشست و دلاله بر پستو رفته همیانی حریر که بندهای ابریشمین سبز داشت به در آورده و در پیش خداوند خانه ایستاده استاده همیان بگشود و اودی از همیان به درآورده تارهای آن استوار کرد و آن را بنواخت و این ابیات برخاند اگر زکوی تو بویی به من رساند باد به مجد جان جهان را به باد خواهم داد اگر چه گرد برانگیختیز هستی من قباری از من خاکی به دامنت مرساد تو تا به روی من ای نور دیده دربستی دگر جهان در شادی به روی من نگشاد، خیال روی تو هم دیده میکند پرخون هوای زلف تو هم عمر می بر باد نه در برابر چشمی، نه قایب از نظری، نه یاد می کنی از من، نه می روی از یاد و این عبیات نیز برخاند هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم چون دخترین ابیات بشنید جامه بر تن دریده بیهوش افتاد و جامه از تن او به یک سو رفته تنش نمودار شد اثر ضربت تازیانه در تن او پدید گشت خلیفه چون جای تازیانه در تن او بدید شگفت ماند و خیره خیره بر او همین نگری است در بان گلاب بر او بفشاند و او را به هوش آورده جامه بر او پوشانید خلیفه به جعفر گفت من تاب ندارم که لب از پرسش ببندم و تا کار این دختر و سبب جای تازیانه در تن او ندانم و از حقیقت این دو سگ آگاه نشبم آرام نخواهم شد. جعفر گفت خدا خلیفه را معید بدارد با ما پیمان بستند که از آن چه ببینیم باز نپرسیم. پس از آن دلاله برخواسته اود بره و این عبیات برخاند دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت باز مشتاق کمان ابروی تو بود عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت فتن انگیز جهان قمزه جادوی تو بود من سرگشته هم از اهل سلامت بودم دام راه هم شکن تره هندوی تو بود چون در بان ابیات بشنید مانند دختر نخستین جامعه بدرید و از خود برفت دلاله برخواسته گلابش بفشند و حلهش بپوشانید. پس از آن دختر نخستین با دلاله گفت بخوان که یک آواز بیش نمانده. دلاله تارهای عود راست کرده این ابیات برخاند. خجسته حال آن عاشق که معشوقش به بر باشد. نچون من مانده تنها از رخ آن خوش پسر باشد. علا یا باد مشکین بو بدان معشوق مشکین مو بگو از من تو را گر بر سر کویش گذر باشد. ندانم در فراغت چند باشم جفت نومیدی. شب نومیدی عاشق همانا بی سهر باشد. چون دختر بیات بشنید فریاد بزد و جامه دریده بیخود افتاد و در تن او اثر ضربت تازیانه پدید شد گدایان گفتند که کاش ما به خرابه اندر خفته به دینجا نمیگذشتیم خلیفه گفت مگر شما از اهل این خانه نیستید گفتند گمان هم نداشتیم که به دین مکان بیاییم گویا خانه از این مرد است و اشاره به حمال کردند حمال گفت به خدا سوگند من نیز این خانه را جز این شب ندیده بودم آنگاه گفتند که ما هفت تن مردیم و اینان سهتن تن زن بیش نیستند. ما از حالت ایشان باز پرسیم. اگر به رضا پاسخ ندهند به قهر جواب از ایشان بگیریم. و همگی بر این شدند. مگر جعفر که او گفت این رعی ناسباب است. ایشان را به حال خود بگذارید که ما در نزد ایشان مهمانیم.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 و هیچ کدام یارای پرسیدن نداشتند قرعه به نام حمال هم زدند هممال برخواسته با خداوند خانه گفت ای خاتون تو را به خدا سوگند میدهم که ما را از حالت این دو خبر خبرده که عقوبت ایشان را سبب چیست و پس از عقوبت چرا ایشان را بوسیده گریان هم و باز گو که اثر ضربت تازیانه بر تن خواهرت چه سبب دارد و ما را از تو سوال همین است و سلام دختر گفت ای جماعت سخنی که این مرد گفت صحیح است یا نه همگی گفتند آری صحیح است مگر جعفر وزیر که او سخن نگفت چون دخترین بشنید گفت ای مهمانان بد بدعهد ما را رنجان دید و ندانستید که هر کس سخن نسنجیده گوید به رنج اندر افتد پس دختر بانگی زد و در حال هفت تن قلام با تیغ برکشیده به در آمدند دختر گفت که این مهمانان پرگو را دست ببندید غلامان دست ایشان را بسته گفتند ای خاتون جوازده که اینها را بکشیم دختر گفت بگذارید تا حدیث ایشان باز پرسم آنگاه به کشتن جواز دهم حمال گفت ای خاتون مرا به گناه دیگران مکشید این جمع گناهکارانند که سرزده بدین مکان آمدند ما شبی داشتیم خوش و عیشی داشتیم تمام. عیش بر ما حرام کردند. پس هممال این بیت برخاند. امروز یار با ما در بند انتقام است. جرم نکرده ای کاش دانستمی کدام است. چون حمال این بیت برخاند دختر بخندید. قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب داستان فروب است